اشتریتو خریدم نسیتو جا گذاشتم فراموش کردم یقول احد الأشخاص اشتريت كتاب 100 طريقه للتخلص من النسيان و نسيته عند البائع نفر میگه كتاب صد راهكار برای رهایی از فراموشی رو خریدم اما پیش فروشنده جا گذاشتم